زور به نام خدای یگانه مهربان سلام در ظاهر حکایت ساده یعنی که از نظر اجتماعی بسیار آمیخته با زندگی روزمره ی مردمه استوره در بلندای های یک قوم اتفاق میفته اما افثانه بر روی زمین در کنار دستها و چشم های اتفاق میفتند که واقعیات رو لمس میکنن و می بینن. در برمیه هزار افسان افسانه ای رو از سرزمین ازبکستان براتون نرد میکنن به نام گوهر شب چراغ یا توانا بود هرک دانا بود این افسانه برگرفته از کتاب افثانه های ترکستان به کوشش ناصر پور پیرار و برزین آزرمهره در روزگاران بسیار قدیم در شهر کوچکی از سرزمین ازبکستان پادشاهی زندگی میکرد که خیلی ظالم و زورگو بود و مردم دل پرخونی از اون داشتند. در این شهر هیچکس احساس امنیت و آسایش نمیکرد چون پادشاه هر صبح که از خواب ناز بیدار میشد فرمانهای عجیب و غریبی صادر میکرد یه روز فرمان میداد امروز؟ باید آب رو به روی تمام مردم شهر ببندین فهمیدین یا نه؟ یه روز دیگه به جلادهای مخصوص دربار دستور میداد که تمام شهر رو زیر رو کنن و تمام کسانی رو که قد بلندی دارن گردن بزنن یعنی که دستور میداد تمام افراد چهل ساله رو به دار بکشن و در این میان اگه کسی کوچکترین اعتراضی میکرد بی بروورگرد به دست جلاد سپرده میشد و روی این حساب مردم شهر با وجودی که از دست ستمگریهای پادشاه کارد به استخونشون رسیده بود اما جرأت سرپیچی از فرمان اونو نداشتن خلاصه مردم همیشه در استراب و نگرانی بودند و شب با هراس به خواب میرفتند چون نمیدونستند فردا چه بلایی قرار به سرشون بیاد و چه سرنوشتی در انتظارشون روزگار به همین منوال میگذشت تا اینکه جوون شجایی که تنها فرزند یک خونواده طوهیده دست بود و از زورگویی پادشاه به سطو اومده بود تصمیم گرفت نزد پادشاه بره و با زبون خوش از اون بخواد با مردم رفتار بهتری داشته باشه و دست از زورگویی و ستمگری برداره پدر و مادر پیر پسر جوون که سخت نگران سرنوشته تنها پسرشون بودن به دست و پای پسرشون افتادن و گفتن پسرچو به ما رحم کن، ما که به جستو فرزندی نداریم، پادشاه بند گردن میزن و بعد هر دو به گریه افتادن، پسر جوان گفت پدر، مادر، براخره کسی باید جلوی این ستمگری رو بگیره و چه بهتر اون یه نفر من باشم مادر پیر پسر در حالی که با گوشه چار چارقدش اشکش رو پاک میکرد گفت من میدونم که دیگه تو رو و این آخرین دیدار ما پسر و صدای حق حق اون بلند شد پسر جوون هر هرچند دلش برای پدر و مادر پیرش سوخت اما با این حال اونا را ترک کرد و به طرف قصر پادشاه برآفرد ساعتی بعد پسر جوون به در قصر پادشاه رسید لحظه ایستاد و به در و دیوارهای مرمرین قصر نظر انداخت جلوتر که رفت نگهبانان قصر جلوش گرفتن و اجازه ورود بهش جوون با صدای بلند گفت من با جناب پادشاه گفتگوی خصوصی دارم و باید هر چه زودتر ایشون را ملاقات کنم نگهبان این خبر رو به گوش پادشاه رسونن که بله پسر جوونی با شما گفتگوی خصوصی داره. پادشاه هم دستور داد پسر جوون رو به داخل قصر راهنمایی کنن. پسر جوون وارد قصر شد. پادشاه با هیکل چاق و کوتاه و چهرهی پر از چین و چروک روی تخت پادشاهی لم داده بود و در حال خوردن میوه‌های جورواجوری بود که در سینه بزرگ و طلایی رنگ چیده شده بود. پسر جوون ایستاد و اطراف رو برانداز کرد پادشاه گفت جلوتر بیا پسر پسر جوون چند قدم به جلو برداشت و دوباره سر جاش ایستاد پادشاه گفت گفتم جلوتر جلوتر پسر جوون دو سه قدم دیگه برداشت و به پادشاه نزدیک شد و با صدای آروم گفت جناب پادشاه من من اومدم تا به شما بگم مردم از دستورهای شما خسته و ناراحتند و وگه شما بخواییم به این روش ادامه بدین به همین زودی مردم و هنوز حرفش تموم نشده بود که پادشاه فریاد زد تمش به بعد با عصبانیت ادامه داد و گفت فوراً روون این پسر گستاخرست خلقومش بیرون بکشی پسر جوون دهنش خوش شد و نتنست چیزی بگه پادشاه قرلون گفت وقتی که این پسری ابله به من پند و اندهز میده و از اومد داری من ایراد میگیره خون جلوی چشای پادشاه رو گرفته بود و فورا دستور داد که همین حالا پدر و مادر این پسری قستاخ رو به در بکشین که دیگه فرزند این چون ابله و گستاخ رو پرورش ندن پسر جوون با شنیدن این حرف با خواهش و اصرار به پادشاه گفت خواهش میکنم خواهش میکنم قربان این کار رو نکنید باور کنید اونا هیچ تقصیری ندارن من خودم به پادشاه باز هم با عصبانیت فریاد زد خاموش. به در عرض چند دقیقه پسر جوون به چوبه دار ویخته شد و پدر و مادر پیرش هم زیر تازیانی جلاد دربار جان سبردد چند روزی از این ماجرا گذشت کم کم سر و صدای مردم از گوش و کنار شهر بلند شد و وزیر که از درد دل مردم خبر داشت و اگه وضع به همین منبال پیش بره پادشاه از تخت پادشاهی سرنگون میشه سعی کرد با لحن دل ای به پادشاه حالی کنه که با مردم ملایم تر رفتار کنه ولی پادشاه از شنیدن این حرف های وزیرش به خشم اومد و گفت مرد احمق مثل این که تو هم سرت به زیادی کرده اگه اگه فقط یک بار دیگه در این بار حرف بزنی دستور میدم صرف داخت توی جلد بریزن به بعد با صدای بلند تاکید کنن گفت فهمیدی؟ و وزیر که احساس خطر کرده بود با چاپلوسی شروع به عذرخواهی کرده و گفت قربان منو ببخشین جسارت کردم منو اف کنید قبل ی و پادشاه که هنوز عصبانیت توی چهره پرچین و چروکش موج میزد دستور داد تا وزیر چه زودتر از جلوی چشمون دور بشه و وزیر هم اطاعت کرد و به تندی از جلوی چشم های پادشاه دور شد مردای روز پادشاه هوس گردش و تفرج در اطراف شهر به سرش زد و دستور داد تا از پای مخصوصش را زین کنند و تمام لشکر برای رفتن به صحرا حاضر و آماده باشند. وزیر هم فلفور سربازهای لشکر رو به خط کرد و چند لحظه بعد پادشاه سواره به همراه لشکر پیاده به راه افتادند. قدری که از شهر دور شدن و به سهرای پرسنگ لاخی رسیدن پادشاه فرمان ای صادر کرد عیست بایستی لشکر از حرکت ایستاد و هنوز نفس تازه نکرده بودند که پادشاه دستور داد تا لشکر در اون مسیر پرسنگلاغ شروع به دویدن کنن سربازهی بیچاره که چارهای جز اطاعت فرمان پادشاه نداشتند به سختی شروع به دویدن کردند در این میون نفسها به شماره و هن هن افتاد عدهای سکندری خوردن و نقشه بر زمین شدند و پادشاه با دیدن چنین هایی به خنده افتاد وقاه قاه نوا شده بود که پادشاه و لشکرش به کنار ای رسیدند و پادشاه گفت همینجا جا چادر میزنیم و چند روزی در اینجا استراحت میکنیم همه نفسی به راحتی کشیدند و چادر پادشاه رو در بهترین نقطه برپا کردن نمیشب که پادشاه بر اثر پرخوری نمیتونست به راحتی بخوابه در کنار رودخونه در حال قدم زدن بود و همینطور که قدم میزد یه دفعه چشش به یه جفت گوهر شبچراه افتاد که در زیر آب مثل دو تا ستاره می پادشا پادشاه بلافاصله فاصله وزیر رو صدا زد و گفت آهای وزیر کجای وزیر؟ وزیر سراسیمه تعظیم کنان حاضر شد و گفت در خدمتم غبل یالم فرمایشی داشید امر فرمایید. پادشاه سریت کنداد و گفت هورن نشکر رو از دار کن و اونها رو به خط می دهده. وزیر با تعجب پرسید قربان، قربان، جسارتا نهارزم کنم اتفاقی افتاده که این وقت شب باید لشکر و از بیدار کنیم پادشاه نگاهی سر به وزیر انداخت و گفت مردک گفتم برو با لشکر و از خواب بیدار کن وزیر تعزین کرد و رفت نگهبانها با نیزه های خودشون به جون سربازه افتادن و اونا رو بیدار کردند. سروازه بیشاره با چشمای خابالود و حراسون از خواب پریدن و نمیدونستن که پادشاه این وقت شب چه نخشهی برای اونا کشیده. پادشاه در مقابل خواب خابالود خود ایستاد و با صدای بلند و رسا گفت من این یه شب چراغ را میخوام همین الان و بعد به سربازا دستور داد یکی یکی به داخل رودخونه بپرند و اون یه جفت گوهره شب چراغ رو بیرون بیارن بیچاره سربازای خوابالو ای جز اطاعت نداشتن اون شب تا نزدیکی های صبح بیش از 100 سرباز به داخل رودخونه پریدن اما هیچ کدوم نتونستن گوهر چراغ رو به دست بیارن پادشاه که از این بابت سخت عصبانی بود و اونها گفت سرباز یه بیارزه من به شما دو روز فقط دو روز فرصت میدم تا اونگه جفت گوهر شبکراغ رو زیرا بیرون بیارین و بدین به من وگرنه همه شما رو گردن میزنم همه همه گنگی توی لشکر افتاد و همه به فکر چار افتادن. ولی هرچه بیشتر فکر میکردن کمتر به نتیجه میدسیدن. تا اینکه سربازی که قامت ریز و کوتاهی داشت فکری به خاطرش رسید. و در یه فرصت مناسب از لشکر دور شد و به شهر برگشت و یک راست به سراغ پدر پیرش که مردی دانا و کاردان بود رفت و تمام ماجرا رو برای پدرش تعریف کرد و از اون خواست تا چارهی برای پیدا کردن جفت گوهر شب چراغ چراخ پیر مرد دانا فکری کرد و از پسرش پرسید پسر جون آیا در کنار اون رودخونه درختی هم وجود داره؟ پسر به تندی جواب داد بله پدر بله یه درخت چنار بلند وجود داره پیر مرد دانا گفت آیا بالای اون درخت لونه کلاقی هم هست؟ پسر فکر کرد و جواب داد بله پدر بله وجود داره و پیرمرد دانا سری تکم داد و بعد نخشه ای رو که ریخته بود برای پسرش بازگو کرد پسر از پدرش خداحافظی کرد و خوشحال و خندون با سرعتی مثل باد خودش رو به لشگر رسوند و چند لحظه بعد به نزد پادشاه رفت و گفت قربان اجازه بدید من گوهر شبچراخ رو براتون پیدا کنم و بیارم پادشاه نگاهی از سر حقارت به قامت ریز و کچیک جوون انداخت و پوزخندی زد و گفت تا. تو میخوایی اون یه جفت گوهر چراغ رو برای من بیاری. که از همه سربازهای لشکر ریز نقش گر کوچکتری بد زد زیر خنده پسر گفت قربان من من قول میدم از پس این کار بر بیام فقط کافی شما اجازه این کار رو به من بدید اون وقت خواهید دید که چطور پادشاه کلام پسر جوان رو قطع کرد و گفت بشه خودتو نشون بده ببینم سرباز جوان با یه خیز بلند درخت چنار رو گرفت و از اون بالا رفت. پادشاه با دیدن این صحنه به سرباز جوان نهی وزید و گفت: آی پسرای کم! <تصفيق> رفتی اون بالا برای چی؟ زود بیا پایین. گوهر شب ته تهر روت نروی نه روی شاخه درخت. احمق! <تصفيق> سرباز جوان گفت: <تصفيق> میدونم قربان، میدونم. من میخوام از اون بالا شیرجه بپرم تا ته رودخونه و اون گوهر شبچراغ رو برای شما بیارم و بعد فرز و چابوک خودش رو به بلندترین شاخه درخ رسوند و آروم دور از چشم پادشاه دست در لونه کلاق کرد و گوهر شبچراغ رو برداشت و با سر در آب فرود اومد کمی زیر آب موند و بعد گوهر به دست بیرون اومد پادشاه گوهر رو گرفت و با اصابانیت گفت فقط همین بود این که آش دنسوزی نیست و بعد سرباز جوان و دیگر سرباز های لشکر رو مرخص کرد و خود در دل به کار و حوث خودش کلی خندی پادشاه و لشکر پیاده چند روز بعد امتداد رودخونه رو گرفتن و رفتن هنوز چندان دور نشده بودن که به جایی رسیدن که از فراوانی مورچه به سیاهی نیزد پادشاه همه رو جمع کرد و پرسید چرا این همه مورچه اینجا جمع شدن؟ زود جواب بدین همه در فکر فرو رفتن ولی نتونستن چیزی بکن پادشاه گفت من هر روز از دو نفر سآل می کنم. اگر جواب قانع کننده این نشنیدم دست میدم سر همتون رستن جدا کنن ولولی در میون لشکر افتاد این بار هم پسر جوان پنهانی به سراغ پدر پیر و دانای خودش رفت و ماجرا رو برای اون بازگو کرد پدر تعتوی قضیه رو درو برد و رو که به نظرش می رسید با پسر در میون گذاشت و گفت پسرم مرگ یه بار شیونم یه بار بهتره که آدم کاری کنه که به خیر همه باشه برو برو بسرم از هیچ کس و هیچ چیزی نترس فقط اون که بد گفتم رو بگو و کاری که گفتم انجام بده پسر جوان این بار هم با خوشحالی به نزد پادشاه برگشت و گفت قربان من جواب سال شما رو پیدا کردم شاه در ابروان سیاهش انداخت و گفت بگو دیوونه بگو بگو تو دیوونه ای پسر گفت قربان زیر روتخونه یه خوم روغن چال شده این علتی که موچه اینجا چم شدن همین شاه نگاهی به سرباز جوون انداخت و گفت اگه راست میگی برو و اون خوم روغن رو بیار پسر بار دیگه خیزی بلند برداشت شا خیر رو گرفت و از درخت کنار رودخونه بالا رفت و طوری وانموند کرد که این بار هم میخواد به نوک درخت بره و از اونجا به داخل رودخونه بپره. پسر وقتی به نوک درخت رسید خودش خودشو پشت برکا مخفی کرد. در یک آن تیری از ترکش بیرون آورد و در چله کمانش گذاشت و دهان گشاد پادشاه رو نشونه گرفت. تیر از کمان رها شد و شاه نخش زمین شد. لحظهی بعد، همه جا رو سکوت سنگینی در بر گرفت نفس در سینه ها حب شد مرگ پادشاه همه رو به حیرت انداخت سربازای لشکر کم کم جرأت پیدا کردند. و از خوشحالی خندیدن و از ته دل هورا کشیدن و دور درخت حلقه زدند. بعد سرباز جوون رو تکردن و اونو به فرماندهی خودشون انتخاب کردند سرباز جوون دستور داد تا پدر دانا و حکیمش رو از شهر آوردن اون وقت خطاب به سربازان گفت بدون وجود این پیرمرد کاری از دست من ساخته نبود اونچوری که من انجام دادم به تدبیر این پیرمرد دانا بود سربازان پیرمرد رو روی دستشون گرفتن و فورا اونو پیش پیشوای مملکت کردن چون با راه نمایی های این پیرمرد دانا بود که شر پادشاه زورگو برای همیشه از سر مردم سرزمین ازبکستان کنده شد از اون زمان بود که این مثلا بر سر زبان ها افتاد توانا بود هر که دانا بود افسانه گوهر شب چراغ یا توانا بود هر که دانا بود رو از سرزمین ازبکستان براتون نقل کردم همین که شنیدید در این افسانه مثل بسیاری از افسانه‌های دیگه قهرمان افسانه در پی کسب خوشبختی و آسایش خودش و دیگران از هیچ چیز واهمه نداره و هر صد و مانه ای رو به راحتی از سر راه خودش برمیداره و در پایان هم پیروز و شادمان به سعادت و نیکی دست پیدا میکنه این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح بود ویراستار بهار گیویان اجراب مهران دوستی صداوردار فضل بیرامی یک کننده زهرا عبدالله زاده. تا فرصتی دیگر بدرود.